در مورد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و حقایق تاریخی که در زمان خلافت زنورین پیش آمدن اشکالات شبهات و ایراداتی که بعضی وارد می کردن بحثهای زیادی خوانده شد گفته شد و شبهات جواب داده شد اما باز هم تا پایان خلافت خدمات کارها فتوحات سیاستها و وفات و شهادت و خلافت حضرت علی رضی الله تعالی و تا پایان یزید و حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه، ان که نمودیم جلو در یکی از اشکالاتی که در مورد حضرت عثمان رضی الله تعالی و وارد کردهاند، خروج قریش و بزرگان صحابه از شهر مدینه طیبه یک اشکال امروز جواب میدید این هم خیلی اساسی هست حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ وقتی که زمان حکومت را خلافت را بدست گرفتند و جهان اسلام تا دور گسترش یافته بود بزرگان صحابه و قریش از مدینه طیبه خارج شدند و در اطراف این کشور پهناور اسلامی پراکنده شدند خیلیها به شام خیلی ها به کوفه خیلی ها به عراق جاهای مختلف سفر کردند و هجرت صحابه از شهر مدینه منوره یعنی تخلیه شهر بود شهر خالی می شد از بزرگان و قطعا هرگاه خالی بشه جایگزین داره اما کسانی هم در مدینه طیبه جایگزین آنها شدند پس این نقل و انتقالات و تخلیه و پر شدن خود این یک نوع زربهه رو یک نوع سازشهایی رو دربر دارد امروزه هم سیاست حکام و سیاست دولت مردان هرگاه که بخوان چهره سیاسی یک شهر رو تغییر بدن خیلی جاها اگر قدرت نواشه اینجا کاری که میخوانده کنن تقلیل و تکثیر جمیعتها هست این یک نو سیاست چون شخصیتها و افرادی که در شهرها زندگی میکنن اینها اگر قدرتمند باشند، قدرت تعریف میشه. قدرت علمی، قدرت اقتصادی، قدرت قومی و ملی اینا همه ملاکن برای یک سیاست. همیشه دولت مردان برای تغییر اینها تلاش میکنند. اول قدرت سیاسی، قدرت سیاسی شهرو تغییر میدن و این تغییر قدرت سیاسی هم به صورت های متفاوت هست یکی از صورت های متفاوت آن همین است که اون حکومت و چیزهای کلیدی شهر اونها واگذار میشه اما قدرت سیاسی همیشه, همیشه موفق نمیتونه باشه تا زمانی که قدرت ملی همان هنگ با قدرت سیاسی نباشه. اگر قدرت ملی و ملت اگر قویتر از دولت باشند همیشه اینها در تضاد هم در جیوه قرار گیرند در یک واکنش های بدی قرار میگیرن اما اگر سیاست دولت و قدرت ملت در یک جهت باشه اینها خیلی موفق میشن بعض هم این قدرت هم تنها بعض بی‌کار اونها اصلا کاری رو درست نمی‌کنه تازمانی قدرت مالی و اقتصادی نداشته باشند چون که نبود قدرت اقتصادی هم دولت نمیتونه کاری انجام بده. باید قدرت اقتصادی رو هم به دست بگیره. هر را که این سه قدرت در دستش بودن، یعنی قدرت اقتصادی، قدرت ملی و قدرت سیاسی هماهنگ بودن، حالا حرکت جهشی هست. اهداف، ها خیلی زود به ثمر می‌نشینانده. در هر جایی که دولتای کار میکنه حالا برای قدرت ملی تقلید و تکثیر جمعیت و واگذاری پستها ها یکی از اهداف اولی برای اون هدف های بعدی هستند بر من اول همینه باید تقلیل جمعیت مخالف باشه تکثیر جمعیت موافق باشه این رو باید توازن ها از بین بره وقتی از بین رفت و از جهت دیگر اینها قدرت گرفتن حالا اهداف اونها خیلی خوب میشه به سمر بشیننده. در هر کجا؟ در هر ملتی هم نگاه بکنید این سیاست ملت ها و دولت ها است هر جایی که منطقی خوش آب و هوا باشه منطقه اقتصادی خوبی باشه درآمدزا باشه اولی کاریک میکنن چرا تو تا زمان قدرت را؟ استحکام ندهند صبات اونها همیشه در مخاطره هست همیشه من بخطر است تحدیدن سرمایه اونها اگر هم ملت با اونها مهنگ نباشه سرمایه اونها میترسن سرمایه گذاری کردن میدونن اگر ما در این شهر سرمایه گذاری کردیم اما چون قدرت های دیگر در جهت مخالف داره حرکت میکنن از عواقب کار میترسن شاید فرده رو بیرون کردن کل سرمایه مال همونها یا ما اگر در این شهر سرمایه گذاری کردیم و اینها رشد کردن و فرده اگر ما رو بیرون کردن همه به نفع اونها تمام میشه ار ببینید جاهایی که این اهداف اونها به اهدافشون نرسیدن فقر در اون منطقه حاکمه چون اونا چیزی که ها رو تهدید میکنه، هنو تهدید برطرف نشده تا زمان تهدید برطرف نشه، میبینی که فقر و خیلی عدم ماندگی در, در اون شهرها حاکم میشه. این چیزی که تون میتون لمس کینه، اینا ملموساً لمس میشن اینها. در حال حالا این یک بحث اصلی هست. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی نهو این خیلی خوب درک می کردن و یک سیاست مدار به تمام عیار بودند. تمام عیار حضرت عمر رضی الله تعالی در زمان خلافت فهمیدن اگر بزرگان قریش و بزرگان صحابه شهر مدینه رو خالی کنند قطعا جایگزین هست افراد دیگر می و شهر پر می شه. وقتی که افراد دیگر بی و تقلیل جمعیت مسلمانه ها مسلمانه های تراز اول بزرگان صحابه باشه قدرت برمیگرده و همیشه دوچار چالش میشن، مشکل درست میکنن همیشه اختلاف داخلی رانق رانق میگیرن به خاطرین حضرت امیر رضی الله تعالی نهو حجرت بزرگان صحابه رو منع کردن اونها رو نگذاشت از شهر مدینه طیبه برن بیرون. حتی وقتی که میخواستن برند برای جهاد هم گفتن نه دیگه شما جهاد قبلا زیاد کردی حالا جهاد هم نکنی چرا؟ چون نقطه دیگری بود نقطه بعدی چی هست؟ اگر در یک شهر که مرکز فرمانروایی و مرکز سیاست یک حکومت هست اگر از اون شهر بزرگان و پایه‌ها و ستون‌های حکومت برن بیرون باز هم دوچار مشکل میسن اگر کسی میخواد جلو فطر رو باید بخوابونه باید اون ستونه ها رو پیش خودش نگه بداره، افراد کلیدی را پیش خودش نگه بیداره جوری وقتی شخصی ای شخصیتی مطرح شد شخصیتش ناخته شده شد و شخصیت در بین مردم تأثیرگذار بود این شخصیت به یک ملت تبدیل میشه تنها نمیشه وجود شخصیتش او رو یک ملت میکنه ای فرد در قرآن دایگاه امت را به فرد اطلاق میکند اما چرا به امت را به فرد اطلاق میکند به نظر بنده یک نقطه سیاسی در قرآن ذکر شده یعنی وقتی که شخصیت روشت روشت یک شخصیت رشد بکنه رشد یک شخصیت اینقدر گسترده میشه خودش به ذات خود یک نفر است اما به اعتبار افکار و به اعتبار اون سیاست ها این یک نفر نیست یک امت قرار میگیره شخصیت رشد، شخصیت رشد میکنه، رشد میکنه، فراگیر میشه، بر قلوب حاکم میشه. الله رب العالمین در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام همین چیزو فرمودن. کان امتا قان تن حنیفا اینجا امت به یک نفره، اما ابراهیم علیه السلام و افکار ابراهیمی مانند یک امت واقعی بودن تمام انبیا دوباره از سرچشمه گرفتن. پس در واقع رشد شخصیت شخصیت بزاد یک نفره اما رشد شخصیتی خیلی گسترده و در تمام مناطقی ریشه بیزند و اینجا وقتی که ریشه زده اینجا قابل حذف هم قرار نمیگیرد. بزرگ میشه پس برای اینکه یک فتنه رو کسی بخواد خاموش کنه باید این شخصیت ها رو حفظ بکنه چرا چون اینها ها یک دولت اگر این شخصیت کنار خودش نگاه بداره، در دولت بی اونها جا بده اینا کاری نمیتونن میکنن اگر هم بخاندن کنن خیلی ضعیف میتون عمل کنند اما اگر اینها از خود مرکز فاصله گرفتن اونجا دیگه افراد دور اینها جمع میشه اونجا تشکیل حزبها شکل میگیرند گروه ها شکل میگیرند وقتی حزبها شکل گرفتن، افراد دور اینها جمع شدن، اینها میشن مشکل ساز نه مشکل درست میکنن این روزه هم این سیاست بازی یا شخصی با کلا حسب میشه وقتی سوخته شو با حسب میشه اگر حسب نکرده مشکل ساز میشه این سیاستهایی که که در کل جهان این کارها دیگه دار ایمال هم. پس اینجا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی 1400 سال جلوتر اینها رو دک میکن و انسان هم متاثر میشه حالا مقام صحابه خیلی بزرگی خیلی بلنده اما وجود شخصیت‌های بزرگ صحابه وقتی که وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی نو این شخصیت ها را گذاشتن اونجا که نگذاری از شهر برند بیرون چرا؟ چون مقام اونها بلند بود کارها و کارنامه اونها خیلی درخشان و نماجان بود اینا هر جا اگر میرفتن اینقدر خدم و حشم جمعی شد اینقدر پیر و مریدی اونجا شد که اینها رو تحریک میکردن تحریک میکردن برای خیلی تشکیل حکومت ها دولت خیلی کارهای بزرگی رو اون مشکلات درست میکردن و از یک طرف وجود اینها خارج از مدینه هم امکان این حزبها بود چرا افرادی جمع می میشدن اونها رو متاثر میکردن؟ از یک طرف و از جهت دیگر داخل شهر اون قدرت ملی رو تضعیف میکردن این دو مشکل بودن در دو بود به zarar حکومت تمامی شدند اینجا حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ نگذاشت که این شخصیت ها از شهر مدینه برن بیرون حتی بعضی حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ حضرت زبیر وقتی اجازه خاص هزار ما میرین jihad گفت نه دیگه شوخی این کردی حالا اینجا بیشه اسراحت وقت اسراحت شوای jihad نکن چرا چون اگر بری جهاد هم بکنی همونجا شافرادی بیان هم دو مشکل درست میکنن چون همیشه, همیشه این هم بدونه همیشه کسانی که دنبال حرکت و سازش هم دنبال شورش و, و مشکلات بعدی همیشه از شخصیت بزرگ سو استفاده میکنن و شخصیت او را سپر قرار میدن. یعنی کسی به هدف رو دنبال بکنه باید اینجا چه کار کنه هدف این است که باید از وجود یک شخصیت به نفع مقاصد خود استفاده بکنه. این هم خیلی زیاد میبینی میبینی خیلی افراد را جلو میکنن تا اون اهداف خود را پیش ببره. اینجوری نیست که عاشقی شخصیت نیستن. این شخصیت هم یه مهر که باید آینده هست بشه. این چیز وجود داره. پس همیشه افرادی که دنبال اینن که بخان کاری رو انجام بدهن، کاری رو انجام بدهن از وجود شخصیتها. از نام اونها استفاده میکنن اونها خود اه اهداف خود قرار بین تا اینها قربانی اهداف اونها واشن. این هم یک چالش دیگر که در خود سیاست ها بکار میکنه این کار میکنه چرا سیاست چیه؟ یعنی در هر زمانی بهرهبرداری برداری به خود این سیاست الان به هر شکلی میتونه اینها این هار ای اهداف را دنبال میکنه در حال حالا حضرت عمر رضی الله تعالی انگو به خاطر چیز نگذاشتن که بزرگان صحابه از شهر مدینه برن بیرون چون دو مشکل بزرگ دواری این جامعه رو تهدید می که حالا مشکلات جلوتر میگم، جلو اونها رو گذاشت گرفتن که نرن بیرون حالا شما داخل شهر مدینه بشینید پس وقتی که شهر طور بود از چی؟ از شخصیت ها, شخصیت ها, شخصیت ها بعد کار بعدی کار میکن شخصیت اینها بود اصلی اما وجود شخصیت در کنار خلیفه یک معین بزرگ هست یک بازوی توانمند. وقتی که کسی آلا، نگاه کن وقتی که پسری داخل بازار میره داخل بازار اگر بره و تنها باشه کسی هم هرچورو دشنام بده فوش بده جواب نمیده میترسیف میزنن اما اگر ببینه چار نفر پشت من استاده پدر هست برادر هست هرکسی از کنه اول خودش جوابش میده خیلی قردرانی هم جواب میده و خیلی با غرور جلوش میسه از یک پشتوانه بزرگ برخورداره پس وجود شخصیت یک پشتوانه قوی برای اون خلیفه است که بخواد کار بکنه چون افکار اونها پشتوانه هست وجود اونها پشتوانه هست همین اینها داره نیروهای بزرگ این هدف بعدی که بعد اینها پروالش رو بعد بگیرن. حتی دولت مردان کار میکنه اگر بخوان یک شخصیتو اگر بخوان یک شخصیتو یا یک فکرو از بین برند مرثی خود شخصی از بین نمیره اول باید پرهاشو بکنن پرها رو میکنن اون بازوهایی که داره اینو حمایت میکنن پشتوانهر باید حس بکنن کم کم اونها رو ترول میکنن از راه برمیدارن تا یک پرها کنده بشن مرغ بدون پر نمیپره این اهداف دیگری ای که سیاست مداره ها برای این که جلوی یک حزبو بگیرن یک قدرتو بگیرن باید مهره ها از طرفش خالی کنن تنها که مونه بدون پر میشه و که نداره اینجا دیگه تاثیر گذار هم نیست خود به خود مهره های کناری حس میشن به حضرت عمر ابن خطاب رضی تعالی تعالیٰ اینها رو کنار خودشو نگه داشتا داخل شهر باشید هر فتنی همونجا نفوز میکرد فتنها فران سرکور و فران خاموش بودند و این بود قدرت این بود درک درک خیلی وسیع و خیلی دور حضرت امیونها رو مشاهده میکرد این از که خود وحب ابن منبه که کتابها یهود و نصارا خیلی مطالعه میکرد و مسلمان شده،, شده بود. حرم تا زمانی که حضرت عمر زنده هست داخل جهان اسلام فتنه ها نفوذ نمی یک حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی سوالی مطرح کردن سوالی مطرح کردن سوالی پرسید از حضرت حضرت, حضرت بن یمان. و یمان در مورد این فتنهها ها چه می دونی بعضی گفتنده که فتن در مال مردم در جان مردم در اولاد گفت نه لیس ان حاضر از این سوال نمی کنم پس اون ها به زور بله هول بینک و بینها بابون بین تو و بین اون فتنها یک دروازی هست و فرمود این سر ام یفته این در شکسته میشه یا فتح کرده میشه فرمود نه شکسته میشه این در رو میشه که فرمودن که ازن لا یغلق پس در بسته نمیشه بلند شد به حضرت امیر مجمع ها بود هیچ کس نفهمید منظور چی هست چون اسرار نبی کریم دست حضرت حضیفه بودن اصرار میدونست صحابه کرام هم نمیدونستن برای کسی هم نمیگو اینجا حضرت همین سؤال کردم فرمودن که بین این فتنه ها کی می, می آین فتنه ها چی هستند؟ بعد فهمون فتنه ها بزرگ زب بله گفت بین تو و بین فتنه ها یک دری بسته است گفت این در شکسته میشه یا باز میشه گفت نه شکسته میشه گفت اگر این در رو شکستند و فتنها نفوذ کردن هرگز این در دوباره بسته نمیشه همیشه باز میمونه و هر زمان فتنها نفوذ میکنند این گفتمانی شد و تمام شد وقتی که رفتن پرسیدن از حضرت حظیفه شما چه گفتید؟ گفت در کی بود گفت در خود عمره تا زمان عمر زنده هست که فتنها نفوظ نمیکنند جهانو بررسی کنی تا زمان حضرت عمر زنده بود فتوحات و فتوحات بود امنیت کامل برای کل جهان اسلام بود بخاطری کس اونجا نفوذ نمیتونست بکنه بخاطرین بعد از اون فرمودند که پس فرم اینجا شکسته میشه و فتح فرم میشه نمیشه فرمودند که آیا حضرت عمر شهید میشه وفات میکنه گفت نه شهید میشه شهید میشه حضرت عمر کشته میشه حضرت گزارش رفت بعد گفتن که حالا خودش متوجه شد گفت بله خوب متوجه شد چیزی که من گفته کامل گرفت و چیزی من پیچه دی که نگفتم اینجا بیهوده نگفتم نگاه کن پس وجود حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی این بود وقت ای روزی خود وحای ابن منابه رفتن پیش حضرت عمر کلسوم دختر حضرت علی که در عقد حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنهما هم عبود. بعد این گفت که عمر روی در جهنم استاده خیلی گیره کر یعنی چه رو در جهنم استاده گریه کرد حضرت عمر اومد خونی داشت گریه میکنی چرا گریه میکنی گفت جوری گفته ازش پرسید یعنی چه گفت تازدبان تو زنده باش. در او مستود کردی در و بستید نمیزاری که داخل جهنم بری فتنهارو رو گیری داره میکنی شما بعد دوباره عمر گفت چرا اینهارو میگی ناراحت میشن روز بعد گفت عمر چند روز بعد میری بهشت یعنی چه؟ حالا حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی به این سیاست نگزاشتن که صحابه کرام برن بیرون این اهداف اساسی بودن اما زمانی که حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ به خلافت رسیدند حالا بزرگان صحابه رو گذاشت برن بیرون اینجا اشکال گرفتن میگن چرا حضرت عثمان اون سیاست حضرت عمر تغییر داد مگر اونجا عهد نکردی بود وقتی که خلیفه شد یکی از بود که روش و اون طریقه دو خلیفه قبل رو ادامه میده چرا الله رو اون عهد و پیمان نمانده این اشکال بود چرا بر اون و پیمان نمانده اشکالو گرفته اینجا اینجا نقطه زدن پس حضرت عثمان الله سوال همین است چرا حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی تغییر روش دادند چرا گذاشتن صحابه برن ویرون اول این است که بزرگان صحابه سرمایدارها بودن زبیر ابن عوام عثمان ابن الله خود حضرت عثمان که سرمایدار بزرگ الرحمن ابن عاف سرمایدار بزرگ سرمایداره بزرگ سرمایدارها بزر. سرمایونه برای اسلام خرج بیشد به نفع اسلام بود اینها یعنی هر درست استفاده می کردم به هر سرمایه سرمایه هست اینجا سرمایه وجود داشتن هر جا که می به دارای جایدادها ها امکانات بزرگ خدم و حشم افراد جمع شدن اطرافونها جمع شدن حالت جمع شدن سوال اینه سوال بعدی اینه آیا اون جلوگیری کرد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صحابه نمیگذاش نمی آیا اون امر شرعی بود آیا امر قرآن بود آیا دستور رسول الله بود آیا این مسئله اسلامی باید نهار جلوی کسی رو بیگیرن نرو بیرون از نه این دستور اسلام نبود این حکم قرآن نبود دست و پیغمبر هم نبود این یک سیاست بود این یک دور اندیشی بود و حضرت به خاطر اون سیاست خودش اونها رو حالا شما نری بیرون داخل شهر بمونید کار این سیاست هم جواب داد اما وقتی که مسئله شرعی نیست اگر کسی هم به بله با اصرار بخاط بیرون بشه حالا با چه بحانی می خجراشو بگیرید آیا رفتنون گناه هست گناه نبود وقتی گناه نبود آیا من ای قانونی داره؟ نه من قانونی هم نداره پس برای اونها اشکال چون اگر جلو میگرفت دوباره اینها دیگه داخل شهر هم اینها این هم قرار نمیگرفتن باید چی کار می که اینجا فتوحات گسترده شدن فتوحات گسترده شد اموال زیاد شد حضرت عثمان اگر اونها داخل شهر با زور نگه همی داشت اون دوباره مشکلات بعدی ایجاد می شود. مشکلات بعدی چی بود؟ اینکه داخل شهر خلافش می حمایت نمیکردن باید اونها راضی نگه داشت دور هم راضی میتونست نگه بداره و ضایقه باید اونها رو دور راضی نگه می‌داره اون دور از اونها کار بگیره این به خاطر این بود که تو فشار مالها زیاد گستردگی کشور و داخل شهر دیگه اینها وقتی که ناراضی و اصرار دارای هجرت داشتن نمی‌تونه اونها رو بگیره اینها نمی‌تونستان حالا به هر حال اینها ورود افراد دیگر داخل شهر بود میبینید که حضرت عثمان ابن الفان شهید میشید حضرت علی ابن ابی طالب شهید میشید و خلافه بعدی هر یکی که بعد از دیگر شهید میشه اکثر خلفا را شهید میکرده یعن توتی قتل برای همه چیدش رو بعدها همون دری که باز شد برای میشه بازمان من تا روزن تمام حکام رو قتل و توتی تهدید میکنه همیشه در خطرن. همون فرمایشی که اون زمان فرمودن که اگر باز شد دوباره بسته نمیشه الان جلوتر ایشالله از اینها دوباره میگیم به حال اینجا حضرت اسمار رضی اللہ رو اینها رو گذاشت اینها رفتن جاهای دیگه همین چیز وقتی داخل کوفه رسیدن سید ابن آس امیر کوفه حشتارده حضرت اسمار را نامی نوشت فرمودند که اینجا چون که مال زیاد شده فتوحات زیاد شدن و دارن از زمین سرمایدارها و فتوحات زیاد افراد مختلف دارن از عجم وارد میشن داخل شهرها دارن زندگی میکنن داره شورش شکل میگیره. حضرت عثمان رضی الله حالا چکا باید میکرد؟ اینا رفته بودن شهر پر شده بود هر طرف اینها دیگه داشت نفوذ میکردن یک سیاست بعدی حضرت عثمان رضی اللہ عنو یک نامه یک سیاست خیلی زیبایی اما این سیاست هم دیگه که عمل نشد چه نویشتای فرمودند که لیکن این شهرها که فت میشن اینها اول مجاهدینن که دارن شرفت میکنن. پس اینها افراد اولن که اینا داره و میکنن میکنند شرفت میکنند یه نظم داخل شهر میآورن، یه قانون داره اجرا میکنه. فرموده اینها که افراد اول اینها رو فرموند درجه بندی کن. افراد اول و یک سری افراد کسانیان که به خاطر اونها جمع میایم مثلا به طور مثال من اگر بخوازم شهر هجرات بکنم برن جایی دیگه بر زندگی قطع چند نفر از خانواده به خاطر من میآیند میگه حالا اون کرافت ما هم می نی چند نفر میشید برادری میگه اخاخری میاد خواهرزاده میگه اطراف خانواده ها کمک چند نفر به خاطر ما میآیند اینها پس اینها اهداف اصلی اینها جهاد نه اینها شهرت نکردن اینها به خاطر ما اینجا اومدند پس این بعضی افراد به خاطر به طبع رفتن کوف زندگی می کردن خاطر اون بزرگانی اونجا بودن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نو اینجا نویشت نامهی در نامه نویشت که اینها رو اول درجه بندی بکن اصیله درجه درجه دو بکن و بعد اینکه اعلان فرمود داخل مدینه این نانو اومده داره شوش شکل می گیره اختلافه بخاطر این اما من یک پیشنهاد میدم. پیشنهادینه که اونهای در کوفج احل کوفه احل کوفه کوفهن اهل کوفه ان اونجا نشستهیاند و مدینه زمین دارند سرمایه گزاری کردند و اهلٚ مدینها که اونجا سرمایه گزاری اهل مدینه است اونجا سرمایه گزاری کردن, کردن. اینها میتونن اموال خود رو معاوضه بکنند اینها مالهایی که اینجا دارن در مدینه اونها که دارن در کوفه اینها رو بکنن تا به حالت هم اینها ببرادشون بر باره حجرتان خودشون علم نگرانی اموال نباشه و همونها این پیشنهاد خیلی عالی بود یک سیاست خیلی خوبی که اگر وقتی اون افراد اصیل برمیگشتن به مدینه خود به خود افراد تابع خود به خود میرفتن. وقتی اصل میره خود فراد دیگری که بخاطرون ها رفته بود دوباره برمی گشتا دوباره اون توازن حفظ می شود خود بخود این سیاستی بود که راحل بدون از فشار و تهدید این اعمال می مانند حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که اون یک معلم و یک محدث در کفو آخر عمرش اما مدینه منوره خیلی ها بی سرک بود اما این سیاست دیگه زیاد جواب نداد چون خیلی ها دیگه دوباره بر نگشترا چرا بر نگشته چون ازدواجها ها صورت گرفته بود اونجا دیگه دخترها رفته بودن داواده آمده بودن. این خود به خود یک چیز بقا است چون کسی در شهر بر ازدواج بکنه خود همون وجود همون خانم و قام خانون جلوی هجرت بعدی رو میگیرن نمیشه نمیشه چون ها سال اونجا رفته بودن دوباره برگشت اونها کمی سنگین شده بود دوباره این سیاست چندان جواب کار خیلی خوب یک تر خیلی زیبا اما جواب ندادین. چرا جواب دادم؟ چون که یک راه داشت باید جروع فتوحاتو بیگرفتن چون تا که فتوحات بیشتر بود کشور گسترده تر میشود تاش کشور گسترده تر میشود اینجا تجارت هم تولانی تر میشود اموال بیشتر میامدن افراد اجنبی بیشتر در کشور اسلامی تردد میکردن خود به خود گستردگی فتوحات و رفت و آمد و مرابده بین مردم اینها بیشتر میشد شود جلو اینو بگیرن تزهیش گونه تقصیر و جرمی بر عثمان ابن افان رضی اللہ آید نمی شود این اون حقیقتی بود که در نماره حضرت اموال.